حال مگه نگفتم دستا سرم بردار خودت گفتی بیام اینجا من آدم پستر از شما تو زندگیم ندیدم این چه حرفییم زن من به خاطر روز و شب کار کردم که بهم به نگن چشم من دنبال پول بابای توه فقط یه دوز میتونه تو چهار سال میلیاردر بشه تا زگی شده باشی برای اینکه بدونی من پولی که از ارث بابام به هم رسید و سرمایه گذاری کردم کار کردم یه قیرون پول هرون تو زندگی من نیست. ارث بابا کدوم ارث اصلا برفرض که شما راست میگی از که تالا عرص شده کار میتونستم این پول حرومش کنم ولی عقلمو به کار اندختم باش کار کردم تو این چنزا من یه لحظه از فکر تو بیرون نایمارم من تصمیمامو گرفتم انتخابامو هم کردم کیا این پسره هیچی نداره؟ به شما دیگه ربطی نداره دارم بهتون میگم دست از این کارتون بر نداری میدم تو از پلیس. به چی جرمیم به جرم مزاهمت شکایت از در ازت من از پلیس شکایت نترسم. من به خاطر تو از هیچ چی نمیترسم. قسم می خورم می کاره این م... کارو. الو 110. خاله می آغا اینجوری پارک مزاحم من شده. بگم آدرسو؟ بلور کریمی بالاتر از آتش نشانی. parke golç. İyi ol deseniz. baba? Muzahama şimdi. Selamünaleyküm. چرا دست ازر دختر من بر نمیداری تو خودش به من زنگ زد که بیام سر قرار از صبح ده بار به من زنگ زدی جواب تو ندادم. کلافم کردی دیگه گفتم بیای ببینم چی میخوای بگی؟ دیشب رفته دم خونه آرشول مادرش کوتکاری را انداخته تهدید کرده. به خاطر اینکه دیروز به سر چرا دفتر رونا منو زد. هم به خاطر رونا هیچ بهش نگفتم. رونا خاالوم؟ رونا خانم. حقش بود زنگ می زدم پلیس ازش شکایت می می‌کردی چرا نکردی؟ نمی‌خوام رونا خانم ناراحت بشه پس چرا الان داری ناراحتیش می‌کنی جای دختر من رونا کی کلامتویه مگه من آوردمش ببین به کجا رسوندی که پلیس خبر کرده حالا بندازت بازداشتگاه حال جه بازداشت بازداشتگاه واسه جایی نذار بگم دختر شما به من زنگ زده اصلا نگفت صداتون می‌زنم بفرمایید نیزاریم حرفمو بزنم سلام سلام کجا رفتی ها کلان تری با بعد یه حالی از کامیار میگرفتم دیگه اونام ازش تعهد گرفتن دیگه کاری به کار من نداشته باش آقا؟ اگه باید آب تو زمین؟ نه بابا خیلی پروتر از این حرف میدونم باید میدنم چیه؟ یادی کلاس عدبیاتمون افتادم اولین با که عاشق شدم اون روز بود استاد یه بیرایی به شاعر محبوبت گفت وقتی دستو بلند کردی جوابشو دادی یه جر و بحثی بینتون شد و استاد از کلاس اخراجت کرد گفت دیگه نیا سراغ کلاس من یه راست بیا امتحان بده زیر 20 تا بش میندازم باورم نمیشد دختر انقدر دل داشته باشه دیگه, دیگه. جالبیشینه من پشت سرت کلاس اومدم بیرون من چوری چی یادم نیست ان عصبونی بودی از دانشگاه رفته بودی بیرون من کل دانشگا رو گشتم نبودی اصلا. چیزی بگیم؟ می‌خواستم بگم دم شما گر. منم با شما موافقم. چرا فرداش نگفتی؟ نمیدونم. جرأتشو نداشتم. ما چه جوری رو از دست دادیم؟ هی مادرت با عزیز واجه موخالفه؟ نه. مشکلی با ازدواج واجد تعلق من نداره؟ نه، ندارم. پول کم داریم. چرا باز؟ چی شد میدی؟ سیفری ده ما کشیده روش. قیمت الله از ایشوده. آدم از دو دقیقه بعدش هم خبر نداره با همین گفتم دست دست نکنیم آ امروز نمی‌درفتیم فردا بازم ضرر کرده بودیم آره قرون 12 تومن داری بزنی به کارت هم؟ هر چی داشتم ریختم تو حساب مشتری یه قرونم هم ندارم رامین جان بچه‌ها چند تا خونه و بیلا تو شهرها و روستاها پیدا کردند با چند تاشون هم حرف زدند اتفاقا براشون جالب بوده ما فقط باید سعی باشون قرارداد و پول حسابشون بریزیم چند نفر اومدن جلو حدود 50 نفر پنجاه نفر بر هر کدوم بخواییم دیویز سامنم بدیم دو پنجا ده تا ده تا هم پول میخوایم قطعا روز به روز بیشتر میشه بشیم من که فعلا ندارم منم تلاوزه کام دست باباست خب بگیر ازش دیگر اونا باید فکر مجاوز بر برنامه مونن باشی مراده شو بگو من میرم دنبالش باش چهارت شو برده هره میارم حالا کامیار به تعهدش عمل میکنه با خداست دیگه کلندری نرفته بودیم که رفتیم چه روزی بوده پس رونم می میتر رفت بخواه <تصفيق> نمیدونم بچه هم میخوان چه کار کنن کلافه شدم دیگه رامین که گذاشته رفته رونام نمیدونم میخواد چی کار کنه رامین که اصلا از اول میخواد کار ای داشته بشه زور که نمیشه بشه بک فریده من فقط یه پسر دارم اون کار خونه و او بکی بسپرم. بس برم حالا که خود در هم درم و سرمو رو بایم به سرحالی هر دوش رو تا بعدم خدا بزرگ. منو دیگه نمیدنم چیکار کنم. این پسر هر میخواد. میگم که حالا سلام. سلام دیر کردی. آرش تو چلو بود. مشتری زیاد داشتن. خسته نباشید. بیوشی من نه من نه خستم آه. بابا رامین امروز نایمد بانگا من این خواهشی از شما دارم بهش بگید پول خودمان بیار پس بده میخواید بره در خودش خونه بگیره اگه تو نه حتما همین کارو میکنم نیزه تنها که نمیشه مادر بعد با هم باشی ما آنجون اگه رامین نیاد من تنها میرم تازه فهمیدم که اصلا من... شو... شو... شو... چرا بونقو نرفتی امروز پشو پشو می خب چرا پول خودشو بهش نمیدی که بذاره بره حسابت مشکل پیدا کرده یا خالیش کردی؟ بابا کار جدید شروع کردی نه؟ باید بهش بگی. ذهنته. به موراش بهش میگم. سلام سلام اما کجاست بالا تو اتاقش نمیخوای باش حرف بسنی فایده ایم داره نگرانی نیم کار دستت نده دادنش دستی کلان دیگه هیچ قلعه تی نمیتونه بکنم شامد آمادست بیارم من رو نه میلا دارم شب بخیر شب خیل. ولی تو رفتم تحت فشار بودم مرتزه و بقیه همه چون انداختن گردن من یه دفعه کوره در رفتم تکرار نمیشه از کجا ماز بشم این کار احتیاج دارم اگه اتفاق افتاد بیرون هم کنی. صفته بگیرین ازم هر کاری سلام میدونی انجام میدونی چرا دو تا خط تو موبایل داری؟ یکیش من نیست هدیه هست میخونم بدم به خانوم خانم مردی مزاحم داره گفتم یه خط پای گوشی براش بگیرم و دست اون خلاص چی نجور نبودی هدیه به این گرونی بخری؟ خرابه نشون بدم دستم به درنم میرسه من چی دارم آقا فشمان یه کارگر ساده هم. گفتم اینجوری شاید بتونم یه ذره خوشحالش کنم. خیلی خوب هلو بستو اوش کارتو شروع کن خرجت زیاده دستی شما ردن بی کار نشدی مامانم من که ایرانو بعدم بی کار نمیده برخشی زدی روز قلیتون شده اشکال نداره اصلای بودی دیگه توش همانه این تو میفهند من برم میترسم افراجم کنم بسه آنه بابا سلام برون تو برم خب تا بابا خب رو شکر آره خب معلوم خوشحال پیشم که ابی خیات بازنشست شده باشه من که حسله خیاتی ندارم آره دیگه بیریم آماده میخریم باشه باور کن آماده خیلی هم خوبه چشم هر چشمه چشم باشد که همه قول میدم معلومه چشم قول بودی تو برایم خدا اصفادم بشم. کجا بابا بیا املت درست کردم اشتاها نادم بیا بشین بیارم چند وقته با من سرسنگین شدی؟ چون گفتم آرش به خانواده ما نمیخوره؟ نه چون به من اعتماد نداری من اعتماد دارم پس چرا به اهمیت مهمیت نمیدی؟ چون نگرانم مارگ زیده از ریسمون سیاه و سفید میترسه با من یه باری اشتباهی کردم شما تا آخر آن میخوایم به ترس نگران من باشی؟ نباشم میدونید چه میخوردی؟ ای او بچه بودم اقلا نمیرسید تو از کجا میدونی با آرش خوشبخت میشی؟ میدونین آدمی که شاگرد اول دانشگاه بوده بعد همه اطرافیش فکر میکردن از بهترین کشور دنیا می‌تونه بورسیه بگیرد چرا و از درس و زندگیشو بلکنه برد دنبال مسافر کشین؟ نه نمیدونم به خاطر بیماری مادرش واسه اینکه بتونه خرج دوا رو بده خب آدمی که به خاطر سلامتی مادرش میتونه از آینده و زندگیش بگذره معلومه چه تیپ آدمی دیگه من اینا برام مهمه نه پول و ماشین پول ماشینی که همه میتونن داشته باشن احساس مسئولیت نه به نظر میرسه تصمیم تو گرفتی شاید به زودی به آش حرف بزنم من نمیتونم هم این طوری مثل دست گلم رو بدم به کسی بر برگیر گشنت خور بذار بگیر گشنت بذار استخانه مشکلی تو دفتر پیش اومده چی؟ میشه خواهش کنم سکه و تله هم پس بدیم از روی خوش من سو استفاده نم آمه مال خودم من باشه ولی من نمیتونم بذارم که آتیش بزنی به مالت خودا ما داریم چیکار کار میکنم بذار این سخونه رو با آرامش باهم بخور You get back, move. Mama! Mama! Mama! جونرفه دست خودم نبود ببخشید حاجی‌ها دمو با, دنبال چه با حرف بزنیم؟ به خاطر ایگه دختر تو روی من بایسته دیگه تو منطق نداشت داشت یا نداشت من مادرتم الان هم هر کاری دارید میخواد بکنی بکن من دیگه کاری ندارم یعنی چی کاری ندارین اگه من میتونم بدون اجازه شما کاری بکنم آره میتونی. بکن من مردم دوستش پول پیش شما داشتم میدونم گذاشتیم برای روز موادها ولی همش مال خودته برو برش دار همشو نمیخوام میترسم نه ترس مرز من عود نمیکنه میدونم قربت برم ولی خب به باید احتیاط کنیم دیگه کی برای این کار میخوای آره بله مگه قرار نشد از پول بذارم گذاشتن ولی خب مخارج کار خیلی سنگینه. مینای کنسدود می‌ذارم میسر جاش کارت همونجا تو هسته که میخواد ببینه از هم با هم صحبت کنه. مبارک خداحافظ مسلمت طالح جان سلام پسرم حالت خوبه؟ ممنونم ببخشید میخواستم یک کاری برام انجام بدی من که همیشه زحمت دارم بر شما گربونه دارم ممنونم ببین مادر من میخوام ببینم میتونی آدرس شرکت پدر رونا رو بر من گیر بیاری؟ دست درد نکنه با قراری نستم؟ نه کجا؟ بروب چند اختی نایمدم نمیدونم سلام سلام من در چی شد این برای؟ جان رامین کجاست؟ زنی میزنم در دسترس نیست، کارخونه هم نبود اینجا هم که نیومده چیزی شده؟ قرار بود چه بگه؟ چرا؟ دیگه اینجا کار نمی‌گفت. چرا؟ خودش شرکت زده. دوباره؟ پدرجون شما که دیدید دفعه پیش چی شد چرا جلویشون نگرفتید؟ بچه‌ که نیست من جلوسو بگیرم. حداقل میتونستید به من بگید. خودش قرار بود بگه. شما که در جریان این چند سال پیش چی شد، خونمون رو فروخ، کل پولامونو به باد داد. منم موافق این کارش نبودم ولی خب هر چی میگم ای نداره. یعنی همون پولی که واسه اجاره گذاشتیم هم از دست میدیم. با امید خدا همه چی درست میشه. این دفعه بارون ماست مثل اون موقع؟ این دفعه تجربهش بیشتر شده. بله خب این دفعه همه زندگیمونو به باد میده. تا الان هر کاری دلش خواسته کرده، من دیگه پاشوایی نمیسم. چطوره؟ احبه! ما, ما شالله! چقدر شیک شدی بابا! آه. اگه خدا بیاموز مادرت زنده بود الان که حالی قربون صدقت میرم خدا رحمتش همهتش! خسنک خسنک خسنک چکار بخواه؟ خب یه عجز بگیرم، به فستان باسته پوله اله خب شد؟ اله خوب شد, آه. آه. خوب شد. دو تا کار داشت ورشوی گرفت. رو بیشتر میذاریم. آره، آدمی زاروی است بیکه دو تا گوش هست میذاریم. خدا که دم دست بچت ندیشته. علوه. بابا باباجون سلام سلام باباجون دیدی؟ شدی آره دیدم ای من قربون اون داداش خوشتیپ پم برم آخه سلام پونه قربونت برم خدا نکنه بابا می‌بینی چقدر خوشتیپ شده ماه شده بابا ماه شده به میاد خیلی بهت میاد چقدر شیک شدی سلیقه منه بابا آره دیگه معلومه سلیقه بابامه دیگه یعنی من با سلیقه چرا تو سلیقه دادی ولی به پای بابا که که اخه حیفتی همش شب من اونجا نیستم شالو برای عروسیت بوشم بیام اوه و، با هم خیلی دیر میشه از زودتر عروسی راه بندازیم یعنی چی حالا عقد کنن عروسی چه عجله هیه. مگه میشه تو مراسم عروس خواهر دو مات نباشه آخه الیمان دورت بگردم خوشم برام برات اسفندود کنم چشت نزنن حالا نمیخواد تو با این آلپ پاشا اسفندود کنی من رفتم خوبه بابا کیانا؟ چاکم اوسه خوبی من خوب چه گرفته بودم قربونت برم قبول بشه چه خبر هست نوراhti داره ولی عوضش یه دختر خوش قیافه به اضافه میشه باشه خیلی خوب قربونت خدافظ خدافظ خوب البته خدا بخیر شده بابا؟ موضوعی در بختیم. اوی قرنه بود دو روز دیگه اعلامش کنم. محسنه بود که از بچه ها. غیر رسمی داد. او باره مسئله یه ما همین کسی که بلنده شده حرف میزنیم باش کنار بیاییم. نمیشه. چرا؟ همه شما من به باد رفت بسه نخور بابا بسه نخور با همه وامی که گرفتی یه زمین همون دورو برا میخری کارو رو شروع میکنی شما که خودتون میدونین بهترین زمین همون بود کنار رو رو خونه بابا بهترین زمین هیچ وقت یادت نره بهترین زمین زمینیه که روش کار میکنی کار کار وجنان هستیه تو جوانی امیرلوه سلام واسه کلام برمای سرم سانا تو این سفرش اومده تو شده؟ مزایده رو باختم. من اعلام کردم. غیر رسمی من گفتم شما که قیمت خیلی بالا گفتین بهرامی زد رو گستم مطمئنی؟ مره، چه مطمئن. بدشانسی؟ بعد هم آدمای آدمان خودشو میاره با تو فکر کار باشی. ببخشید سلام. سلام. این نظری رو کجا می‌تونم بدم؟ طبقه بالا تو اتاقشونن. من سفارش سر بید. ببخشید من میخواستم آقای نظری رو ببینم شما من مادر آقای آرشم آقا آرش شما به فرمایت خودشون میشناسن پس اجزه بدین من هموهنگ کنم خویش میکنم. من مادر آرشم زیاد وقتتون رو نمیگیرم در خدمتم خونم اومدم بگم من راضی به این وصلت نیستم نمیدونم نظر شما چیه مثبت یا منفی فقط میدونم که این ازدواج به سلاح نیست میتونم بپرسم دلیل مخالفت شما چیه دلیل خود میبینیم اختلاف طبقاتی شما کارخونه دارین شرکت دارین ما یه خانواده معمولی هستیم خیلی جالبی همه دوست دارم با خانواده سیر و وصلت کنند و من دوست ندارم آقای نظری من برای شخصیت پسرم خیلی احترام قائلم. دوست ندارم تو زندگی زیر دست کسی باشه و کم بیاره دوست دارم با کسی وصلت کنه که هم سطح خودش باشه که تو زندگیش مشکلی پیش نیاد حالا من نفرست دیم دنبال پسر شما همچین خبری هم نیست درزم منم آدمی نیستم که شخصیت کسی رو تغییر کنم بله ولی خواه نخواه پیش میاد دیگه مثلا فرض کنین الان قرار اخت ازدواج گذاشتیم قطعا ما از عهده های شما بر نمیه شما از کجا میدونی خواسته های ما چیه خب معلومه عروسی مجلل طالار آنچنانی بای نظری من نمیخوام پسران در موقعیتی قرار بگیره که از پسش بر نیاد آرش همه رو به خاطر من داده دانشپاشو به خاطر بیماری من بل کرد تو گرما و سرما رو موتور به خاطر هزینه داروهای من کار کرده خوشبختیش بر من خیلی مهمه منم دخترم و خیلی دوست دارم و اصلا نمیخوام دیگه بیگو دار باب بزنم مشکل اینه که این دوتا جوان همدیگر رو دوست دارن و دخترم من تحت فشار گذاشته وگر نه من آدم نیستم که به این دستلت رضایت بدم پس ندین چجوری؟ اگه کوتاه آنه چی؟ اگه رضایت بزرگتر رو نباشی کتا میان با اجازتون قاجون از بس از فهمیارد خلای نشد پول که یا همین الان برمیگردی شرکت بابا یا پول منو به من برمیگردی ما میگم میخوام آرشو ببرم سه تا نیستم با بر خودت اخر کردی ها همین مونده بود مادرم جلو مردون منو خورد خودم کار خسته شدم شما اشتباه دیگه بهش اطمینان نمیکنم تا زمانی که من قاله نشم اینو زورا شب تو یا تاریک یا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 مهربونی رونی ایش نزنی آخریم دیگه ایم جورچینی ایش می رونی ایش نزنی آخریم دیگه ایم جورچینی ایش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 من چه میدونستم اومد زود بره چه قروبی داشتن خنده های آخرش اقای خدافزی تپش از قلبم مثل پروانه نشست روی سنجاق سرش مهربونی ایش نازنینی ایش آخرین تیکه جور ایش جورچینی ایش